ما آشغان حریف شبانه یاد یادارید حقوق بندگی مخلصانه یادارید به وقت سرخوشی از آه و ناله و شاب به صوت و نغمه چنگ و چغانه یادارید چو لطف باود کند جلوه در رخ ساقی زه آشغان به سرود و ترانه یادارید چو در میان مراد آورید دست امید زه عهد صحبت ما در میانه یاد آرید سمند دولت اگر چند سرکشیده رود زه همرهان به سر تازیانه یاد آرید نمیخورید زمانی غم وفاداران زه بیوفای دور زمانه یاد آرید به وجه مرحمت ایسا کنان صدر جلال زه روی حافظ و این آستانه یاد آرید